تعالا آثار این این چند روز متعرض کلمات مجموع معاضیا شدیم به مناسبت مقدماتی که در اصول عملی ایشان آوردند خلاصه این مقدمات مقدمه اول ایشون نسبت بین امارات و اصول رو حکومت گذاشتن به این معنا که ادله که دلالت بر وجوب عمل میکنه حاکم و شارحه بر ادله که اصوله مثلا وقتی طهارت و این نظیف یا تاهر به اسلام معنا در واقع نظیف حتی طعنهم حق دارد واخره ازو برنامه گفت بیانه مثلا حجته یا آمد گفت مثلا فرض کنید خبر واحد حجته این کلیه خبر واحد حجته شعر میده کلمه حتی تعریف رو که یا این پیدا بکنه یا بیانه دیار واسه میشه شاره این خلاصه نظر ایشان در دو کلمه و اما نسبت به اصول تنزیلی و غیر تنزیلی هم واصایبشون به حکومت و اون حکومت رو تصویر کرده این تصرف در کلمه بسا در رسان دلیل در شک مثلا اگر گفت لا تن بازیر به شک از اون طرف هم مثلا آمد گفت کلوشه لکه حلال کلوشه به اصطلاح حتی تعرفه هم نهون چون اینجا عنوان شک آمده اون وقت اگر این ای که الان شکل داریم حالت سابقه باشه دیگه اساطل هل جالی نمیشه اون حالت سابقه جالی میشه یعنی به عبارت نوخرا وقتی که آمد در لاتنگوز یقین به شکل در شکل تصرف کرد گفت شکل رو کنار بگذار پس دیگه نوبت به اساطل هل نمیرسه چون اساطل هل فرز شکل شما شکل کنار رو این هم نسبت بین لاتنگوز یقین به شکل با اساطل هل نسبتش مثلا خصوص حکومت اصول تنزیلی هم بعضا علا بعض باز حکومته اصفه از این قاعده تجاوز با استثار دلیلش هم اینه که در قاعده استثار می توانید لات هم واضح یقینه دلیلش اینه در دلیل تجاوزه نمشکو پیشه این لم تجاوزه فیضا جز تهو فشکو که لیزه بشه این که میگه شک نداری این نازر از بلاتنگوزالی امینه به شک اینجا میاد میگه شک نداری پدر جای لاتنگوزالی امینه به شک نیست این نسبت رو نسبت حکومت میدونن که دلیل قاعده تجاوز حاکم بردلیل ها. این خلاصه نظر مبارک مرحوم آزیا و البته این مطالب رو در آخر ها غالبا در بحث توارض اصول قبردن خود شیخ و شیخ دیگران مرحوم استاد اینجا هم کردن استاد برمناسبه و این رو ای توضیحی دادیم که قبل از اصول عملی مرحوم های, های اراقی به این تعبیر و وزیشون خودم دیگران هم دارن احساس رویشون و هدف اینه که در ضمن این مواحظ یک مقدار زیادی قبل از بود در مباحث اصول عملی با حقیقت این مباحث آشنا بشه اشکالی که ما به ذهن اون بود این بود که در باب اصول تنزیلی و غیر تنزیلی بحث حکومت مطرح نیست چرا؟ اون خلاصه ای که روز از که ما در کمی توضیح بیشتر و سعی میکنم این رو یک تحلیلی بکنم که بتونید تصور بکنیم و خودتون تصمیم گیری کنیم که بلقدر حکومت هست یا نه. چون معرض در درباب به حال این امروز توضیح واضح تری درباب به اصول عملیه شفت به اصطلاح به اصطلاح خودبنده معنی حرفی عرض شده چون به معنی حرفی عرض شده اون به حسب لحاظ عوض میشه مثلا درباب قاعده ها حالا این مثال بزنیم و قاعده تجاور اگر بخواد قاعده استثاب جاری بشه باید حالت قیام رو نگاه بکنیم فرض کلام در جای سید از سجده از شکل در رکوم میکنه خب دیگه میگن تو دیام که مسلم بود نمیدینه رکوع انجام داده اصلا باید رو. اما در قاعد تجاوز اصلا نظر به قیام نمی کنه کلا یعنی دقیقا به عکس اون حالا نظر به خود رکوم میکنه به این جز که مشکوکه در اسنا ما بینه به اصطلاح قیام و سجور واقع شده نظر او به اینه نظر او به قیام نیست ولذا اما می فرماد بلا کرد این بلا کرد نظر کرده به رکوب او طبیعتا ناکه نظر کرده به رکوب نظر به قیام نیست این نیست که این دلیل ناظره به اون دلیل باشه حالا این اصل تر و توضیح مطلب به نحوی که واضح بشه ارز کردیم در باب استصحاب در باب اصول قوامش به نظر و لحاظه در باب این نکته ای که در ما نحنفی هست در مثل استصحاب و قاعده تجاوز و تحلیل این دوتا قاعده و بعدا نمونه های دیگه شما عرض میکنیم، سه احتمال اساسی داده میشه احتمالات خب دیگه در عالم اعتبار احتمالات زیاد سه احتمال اساسی داده میشه خب دقت بکنید احتمال اول این است که واضح شاره جاعل نظر بکنه به حالت صابق و از اون طرف نظر بکنه به بعد حالت صابق بگیم اینو دو تا نظر مختلفن ربشن به هم ندارن یعنی اگر نظر کرد دروکو خوب دقیق بکنی طبیعتا نظر به قیام نکرده نه اینکه که نظر کرد و لحاظ نکرد قیام این هم وقتی روه نگاه کرد اصلا قیام لحاظ نشد نه اینکه لحاظ ادمش، لحاظ شل و بنش کرد و به عبارت انسانیه بین این دو تا لحاظ رابطه نیست یا لحاظ حالا صابقه یا لحاظ روه رابطه بینشون نیست این یه لحاظ اون یک لحاظ. این یه احتمال احتمال دوم بگیم نه رابطه بینشون هست چرا رابطه بینشون هست؟ اون نقطه فنیش اینجاست رابطه اینه که واضح و جایل هر دو یکیه چون جایل هر دو یکیه پس باید لحاظ باشه دیگه شاره وقتی میگه بلاغ قدر کرد این همون شاره است که گفت لا تنبازه یقین بشن این همون لیفه. دیگه چون جایل یکیه نمیتونی بگیم وقتی بلا قدر کرد چون همون جایل میگه شما رکوع در نظرات سابقه پس در حقیقت خوب دقیقا این نظر احتمال دوم پس در حقیقت وقتی که میگه بلا کرد، یعنی میگه من در اینجا در سلاف حالت سابقه رو ندیدم چون حالت سابقه که حسد سلاف نیست مطلقه لاتنگوزه یقینی بشته که مطلقه چه در سلاف چه غیر سلاف امیدارم نقطه فنی رو چند رو. چون جائل یکیه چون معتبر یکیه خواهی نخواهی با تو عالم لحاظ این دو تا با همدیگه رابطه ای پیدا بکنن یعنی یه دفعه لحاظ میکنم به طور کلی حالت سابقه رو یه دفعه در خصوص صلات میگه بلاقدرت کرد به رکوع لحاظ میکنه چون همین اشاره ان هم گفت لاتن باذلی یقینه بشه معنیش اینه که ایشون وقتی میگه بلاقدرت کرد یعنی من لحاظ کردم حالت سابقه رو دیدم حالت سابقه رو که قیامه. اما لحاظش اگر ولی زیر شیخ انساری فرمون دیگه انلوه زن حالت حالتو سابقه این لحاظات حالتو سابقه در همین شیخ انساری فرمون چون در قاعده بسا... تجاوز لحاظ نشد حالتو سابقه نه اینکه نیست حالتو سابقه هست لحاظ نشده چون جائل یکیه چون واضع یکیه پس خواهی نخواهی تو عالم لحاظ اون حالتو سابقه نگیده طبیعتا نگیده من را دکه این احتمال چند احتمال سوم اینه که بگیم هم لحاظ کرده و هم اضافه بر لحاظ به مقام دلیل لفظی هم سرایت کرده دقت پس در احتمال اول اصلا لحاظ نکرده حالت سابقه فقط رکوع نگاه کرده طبیعتا وقتی که رکوع نگاه کرد قیام دیگه لحاظ نشده طبیعتا لحاظ نشده نه اینکه ایشون لحاظ نکرده پس ربطی بین دوتا لحاظ نیست این احتمالا. احتمال اول احتمال دوم نه ربط هست چون جایل یکیه بی بیرفت باشه لیکن ربط رب در حد لحاظه فقط در حد لحاظه همونی که از ظواهر مثلا ممکن از شیخ اینجا نیگه حالا ممکنه بعض از عبارات مشهر باشه فقط در حد لحاظه یعنی وقتی که میخواد بگه بلا قد میگه این آقا حالت سابقه داره من حالت سابقه رو لحاظ نمی کنم. این شد فقط حد لحاظ سوم بگیم نه به حد لحاظ تمام نمیشه چون جائل و واضع یکیه همین لح... عدم لحاظ حالت سابقه به لفظ هم می رسه یعنی در حقیقت وقتی با بلا قدره کرد اضافه بر لحاظ بیان کرده که من که میگم بلا قدرکت یعنی به قیام نگاه نکن لا تنقذر یقینه به شک دیگه نیست من وقتی خودم میگم بلا قدرکت یعنی اون لا تنقذر یقینه به شک که با قیام نگاه بکنی اون دیگه نیست و سه تا احتمال رئیسی داده شد کلمات منوازی آبه مرموم استاد مقنیست و احتمال سبون توضیح دیگه خوش من یک تحلیلی کردم که کاملا در مفتر میتونی فکر میکنی حرف آزی ها در تو نگفت آزی های تو تحلیل قانونی کلام اینشان اینه که وقتی شارع میاد رو کوه نگاه میکنه اون قیام رو هم دیده چون خودش جلع استصال کرده این رو لحاظ نکرده یک دو در مقام تعبیر هم ناظره فقط به مقام لحاظ نیست تو آلم لحاظ نیست تا گفت بلا قبر کرد یعنی لاتنگوزر یقین به شک دیگه من مراجعه به لاتنگوزر یقین به شک نکنم دیگه شما شک نداریم یا چک رو بر میگاره این کلام مروم آزی است. پس کلام مروم آزی ها و مروم آه به این نکته است که در مثل این دوتا اصل تنزیلی یک شاره در مقام جائل در مقام روز ما بینه های مختلف ملاحظه میکنه بخواد قاعده تجاوز قرارداد قاعده استصحاب نگاه میکنه این طور نیست قاعده استصحاب نگاه نکنه چون یک نفر انجام داده این کار یک نفر انجام داده یک واضیه یک جائله واضیه یعنی جری یک معتبر و این وقتی که تبیات به لسان دلیل تو لسان دلیل هم این ابراز میشه یعنی شارع ابراز میکنه که من اینجا حالت سابقه رو ندیدم باشه سابقه قیامه من رو رو دیدم پس در حقیقت میخواد بگه من دیگه استثاب استثابی که خود من گفتم لا تنقاض یقینه به شک من دیگه استثاب نمیبینم این خلاصه حرف نرمه آسیفا و مرحوم استاد لیکن خب یک احتمال هست که نه به مقام لحظ سرایت نکنه فقط تو مقام لحاظ وقتی میخواد بگه بلا کرد میتونست استثاب بکنه بگه قیام قیام در نظر بگی رو گه اصلا رو کو. لیکن این کار نکرد ولحاظ کرد خود رو کورو این رو در دوره ساده نظر خود من بیشتر این بود که شاره این کار کرده تو آلم لحاظ نه تو مقام درات لفظی که اسمش هم روح غروب در اون وقت اسمش هست لیکن بیشتر به ذهن رو اول. در معنای اول اصلا شارع هیچ لحاظی نکرده. آمده راس سکت رو رکو. درست خودش آره گفته حالت ثابته. لكن اینجا نفی حالت سابقه به لحاظ اینکه حالت رکوع رو لحاظ کرده. به این جهت نه اینکه تو عالم لحاظ نفی کرده بوده و نه اینکه در مقام تعبیر نفی کرده باشه. حالا این تصور بکنید سه احتمال رو. من برای توضیح مطلب شبیه این، اگه مثلا مورد شبیه نفی که ذهن واضح‌تر بشه. خب یکی از مطالبی که محل خلاف مفهوم لغبه و مشهور اینه که مفهوم لغر حجیت نداره ما در بحث مفهوم لقب تقریبا بشه اینجوری کردن تقریبا تا حالا یک توضیح دیگر ببینید شما کسی که بخواد مفهوم لقب رو اثبات بکنه برای تحلیل کلامش این راه رو میتونه طی بکنه راه درستش اینه ببینید شما یک ماده رو در نظر بگیرید ماده چوب مثلا در عرف این ماده رو در حالات مختلف اسم مختلف میذارن مثلا وقتی که زنده از میگن درخت وقتی که بریدنش میگن چوب خام مثلا وقتی به این شکل درامن میگن میز وقتی به این شکل دیگه میگن صندلی در قضب پس یک ماده معیم چوب در مقابل میوه در مقابل سبزی ازار در مقابل گوش یک ماده معیم یک شکل ماهیم میگیره بشنگن میز یک شکل دیگه میگیره همون چوب بشنگن سندلی بگید اینجا هم اگر بخوایم دقت بکنید اینجا هم سمیست تا احتمالی که عرض کردن میاد یک واضعه وقت وقتی آمد گفت این چوب با این شکل اسمش صندلی خود دقت بکنید اصلا چیزی دیگه رو نگاه نکرده نگفته همین چوب با این شکل دیگه اسمش میزه تو مقام وضع دقیقا. تو مقام وز نیامده بگه مثلا گوش اگر باشه این اگر مثلا اصرش سندلی نیست ماده معین با هیئت معین رو اسمش رو سندلی گذاشته احتمال اول مثل همونجا این فقط ماده رو دیده نه نفی ماده دیگه و فقط این هیات رو دیده یعنی وقتی آمده اسمین سندلی گذاشته نیامده چوب رو در حیعت های مختلف ببینه درخت بکنی بگی اگر اون هیئت ها نبود این هیئت بود اسمش چوبه نه همین هیئت در نظر گرفته این ماده در اسمش چی سندلی صندلی گفتم پس احتمال اول همین ماده و همین هیئت در نظر گرفته بدون اینکه نظر به سایر مواد و سایر حیات داشته باشه احتمال دوم اینکه ما نظر داشته اما فقط لحاظ کرده در مقام وضع لفظ این رو در مقام وضع نگورده مثل همون احتمال دو رو یعنی صندلی رو دیده شکلش دیده از چوبه به این شکل خاصه وقتی خاصه اسمی رو بگذار سندلی فکر کرده مثل میز نباشه فکر کرده فرستان تنهی درخ نباشه به یک هیئت خاصی با یک وضع خاصی در یک شرایط خاصی اما اینا تو مقام لفظ سرایت نکرده. احتمال سغب این همین هم تو عالم لحاظ بوده هم تو عالم وضع بوده یعنی وقتی اومد اسمی این گودوشه صندلی دیده که همین چوب به شکلی دیگه میزه پس صندلی یعنی چوبی که دارای این شکله و میز نیست و هیز و میز درخ و درخت نیست دقت بکنید در وقت وضع اینا را همه رو در نظر گرفته اگر در وقت وضع در نظر گرفته باشه اگر گفت سندلی به خر ببینید خواهی نخواهی مفهوم داره دیگه چون در مقام وزن در نظر گرفته شده پس معناش اینه که میز نخر درخت نخر کنده نخر این مفهوم لغت. همین سه احتمالی که ما الان در اینجا این هم اصل عملی بزه دیگه فعلا میکن چاله. همین سه احتمالی که الان در اصل عملی دادیم به اینه این سه احتمال در مثل وزه الفاظانه یه دفعه شما فرسوندیم، بچه یه دوم می‌شن فرسوندیم، علی می‌گذاریم، حسن می‌گذاریم. یه دفعه میگیم این بچه رو نگاه می‌کنی اسمش حسن می‌شه. یه دفعه نه، من این بچه رو حسن گذاشتم، بچه‌ای که اول نیست، سوم نیست. مودقاتو کنید. لحاظ کردیم که اول نباشه، سوم نباشه. احتمال سوم این لحاظ تو مقام اسم و تو مقام وضع آمد. پس حسن یعنی بچه ای که پیش من هست و اول نیست و دوم نیست اسمو اینجوری حسنه حسن این بهترین تقریب برای مفهوم لغم کسانی که مفهوم لغم بایلن در اینقدر نقطه اساسیشون همینه چون مفهوم لغم مقام استعماله شما به جای مقام استعمال دیدون تو مقام وزن. در مقام وزن این چه کار کرده؟ این تحلیل لغوی شما ها چی فکر میکنید؟ یعنی شما میگه درسته اسم این بچه دوم حسن گذاشت اما وقتی حسن گذاشت قطعا لحاظ سر که اول نباشه قطعا این طور دیگه سوا نباشه اما حد این لحاظ چیه وقتی دومه در نظر گرفت خواهی نخواهی اول خواهی این طوره این مثل اون احتمال اولی که اونجا دادیم یا لحاظ کرده لیکن در مقام جلد به ازای این قید قرار نداده یا لحاظ کرده و تو مقام جر قرار داده فرضا اگر گفت مثلا بگی حسن بیاد معناش اینه که نگید بچه اول بیاد نگید بچه ای بیاد مثلاً معناش میگه. اصلا مراد از مفهوم لغت اسم نیست یا اسم اعلام نیست مراد مثل سندلی مثل چیزی که خب پس حالا البته راه در اونجا تنزیه شده پس این نکته رو دقت کنید شبیه این بین اینجا میاد اگر آریان یاد باشه در کتاب معانیل در بحث مشترک استعمال لفظ مشترکی ایشون میگه جایز است مجازه ایشون قائل که ما وقتی لفظ رو به ازای یک معنا وضع میکنیم مثلا میگیم این اسمش کتابه یک قید بهدت هستش به شرطی که تنها این مراد باشه به اگر در دو معنا به کار برده شد قید وحده وفته لزا مجاز میشه خب این در معاله مرحوم صاحب معاله قائل به قید وحده بعد از ایشون مرحوم صاحب قوانین قائل شدن به حال وحده نه قید وحده گفتن لفظ وحد شده برای معنا در حال وحده جنبه قید نداره بعد از قوانین هم خب مشروع میدون دیگه آقا نوشتن آقا لفظ وحش بوده برای معنام لحال وحدت نه قید وحدت هیچ کده هم نه حال وحدت نه قید وحدت این سه تا مبنا که در بحث به مناسبت تو بحث مشترک رو این همون نقطه است که ما اینجا رو میگیم نه همینه همین نقطه است اینجا یعنی مرحوم صاحب ما عالم معتقد بوده اون وحدت رو سرایان داده به مقام ورز تو مقام ورز این وحدت لحاظ کرده صاحب قوانین میگه نه وحدت هست اما سرایانه به ورز نکرده، فقط لحاظ شده یا شبیه مثلا زرف وحدت حال وحدت آقایون مشهور که بعد اصاب قوانین آمدن درست همینه گفتن نه لحاظ نه سریان به ورز کرده من وقتی گفتم تصویی نظرم بینه این این معنا اما اینکه این معنا به تنهایی اراده بشه چیز دیگری با او اراده نشه چنین چیزی اصولا نه لحاظ شده نه در مقام وز معتبره اینه که میگه در مقام وز اصول شمیز در کتاب معالم اموده قیل وده اونه که میگه لحاظ شده اما به مقام جهر نرسیده همون سر قوانی میگه حال وده این که در کتاب های ما آمدن سفرسون کفایه کفایه رد میکنه میگه نه حال وحدت نه قید وحدت این همون میگه ذات معنا اصلا نگاه نشده نه لحاظ شده وحدت و نه سرایان به مقام لفظ پیدا کرده روشنج این دوتا مطلب بحث مفهوم لغر و بحث این قید وحدت برگردیم به ما نحنفی اصول عملی هم همینطوره فرم فرما کنه نقطه ای که فرمانو کنه چون چون جهل هست توش اعتبار هست ما صحبتمون اینه وقتی که خود شعره هم میگه لا تنوازل یقینه بشن همون شعره هم میگه بلاغ قدر کرد این یک نقطه فنی است، از سر ما در روایاتمون شعنمون توی مسئله شعن استنباته اما ما خودمون میتونیم در مثلا فقه بلایی فقه حکومتی یا مغاردی که عروف از اون قرار رو دیم. اصلا این شعر رو به عنوان شعر ابداق قرار بزید بحث در اینجا در تحلیل قانونی اینه آیا وقتی میگه لا تنقذر یقینه به شک از یک طرف از یک طرف میگه بلاغ قدر کرد آیا بین این دوتا رابطه هست یا نه تمام نکته اینه چون واضع یکیه جاهل یکیه سه تا احتمال الان براتون تون ارز کردیم یه <تصال> احتمال که ربطی بینشون نباشید چرا؟ چون شک حالت اندکاتی داره این معنی حرفی داره یه دفعه نظرش فقط به حالت سابقه است این یه جوله خاص میشه یه دفعه نظرش اینه که یک عملی که قبل و بعدش انجام بدی اون عمل رو انجام دادین این نحوه دیگه‌ای هست اصلا, اصلا ربطی به هم ندارن دو تا چه هلو. دو تا وضع مثلا همون بحثی که داشت کردن لفظ صندلی رو قرار برای چوب با این شکل اما چوب نباشه یا این شکل نباشه این اصلا لحاظ نکرده اصلا نمیومد بگه من تمام عالم نگاه کردم فقط چوب اصلا میوه نباشه سبزی نباشه گوشت نباشه حیوان نباشه درنده تمام عالم نگاه کردم تمام مواد نگاه کردم تمام حیات نگاه کردم بعد نظر کردم گفتم که صندلی اونی سیداره داره این ماده خاص با این حیات خاص باشه بقیه نیست اصلا چه لحاظی نمی کنه درسته چه برسلی این که این لحاظ بخواد سریان پیدا که مقام مقام ورزه این نقطه فندیشو بخواییم بشین فکر کنید راهش اینه پس در حقیقت نقطه اختلاف اینه که در مثل قائده استثاب که به طور کلیست چون استثاب نازره به خود سلات میگیست حالا اگه نازر بود باز یک مشکل به هم بود. شاید حلش آسان‌تر بود اون کلیست نظرش را قد به حالتی سابقه است حالا سلات باشه یا غیر س در اینجا در خصوص صلات، دوستان بنابر بر مبنای مسأله که واقع تجاوز فقط تو صلات جاری می‌کنه. خداوخدایمون همینه ان میاد. مرحوم استاد در کلیه ملکوات جاری نمی‌کنه. معلوم است به استثنایه. وضو ان شاءالله اگر کاری که این مطرح روشن نیستن، با مرحوم ونایینی نقطه فنیش ان شاءالله در محلش هست. علایوهانه آمده در مسئله سالات در جایی که شک در یک عملی که متوسط بین دو تا موثقنه، دقیقاً؟ این در این قید یه عملی که ارتباطیست یه عملی که صحتش متوقفه حالا این ممکنه ما انشاءالله خواهیم گفت چند بارم انز کردیم ما به جای قاعد تجاوز دوی و صحیفی فعل نفس میگیم هم قاعده فراقه هم قاعده تجاوز دو گاهی ازش تنگیم اسات و صحیفی فعل نفس در قبال اصالت و صحیفی فعل غیر و انشاءالله انز خواهیم کرد که شاید علو خلاف علی مشو اسات و, و صحه فی فعل دلیل نداره ضعف علی اخي که الا احسن دلالته میونه که عمله صریحه اما اسات و صحه فی فعل نه جاریه چه در اثنای عمل که در خصوص صلات که اسمش قاعده تجاوزه چه بعد از تمام عمل که اسمش قاعده فراغه ان شاء الله از خویم که ایدهی گفتن دو, دو قاعده از ایدهی گفتن یکی و هر دو رو مصبر و اسات ارجاع به قاعده تجاوز ما معتبریم یکی سردار اجازه بدین وقایع فراهم حالا ان شاءالله این بحث در پی خودش با قطع نظر از این نکات فنی خودش خاص خودش اون تحلیل و اصولی چیه چون با این تحلیل و اصولی حقیقت و اصول هم روشن میشه واقعیت و اصول هم روشن از سرش احتمال یه احتمال که این دو تا اعتبار هیچ ربطی به هم نداشته باشه یه به احتمال اینکه ربطشون فقط لحاظ باشه تو مقام جعل سرایت نمیکنه. دیگه حالت سابقه رو لحاظ نکرده حالت ثابته رو. دقت بکنید. لحاظ نکرده. احتمال سوم لحاظ نکرده و بعد بیان کرده. یعنی <تصح> مجرد عدم لحاظ نیست. تو دلیل حتی هم آورده. چون حالت ثابته رو دقیق غلطان قضیه بشه. اونو حالت وسط دید گفت قدر کرد این دو تا تعبیر و هم دیگه ناظرن این هر با خلاصه هر با ازیا مروم استاد این روشن شد پس سه تا احتمال شما میتونه فکر کنید خود من در دوره حسابات تا مدتی شد تا یک دو سال قبل بیشتر نظرم روی معنای دوم بود که لحاظ نکرده یعنی دیده او رو لکن نگاه نکرده و عدم لحاظ کافی است برای اینکه به اصطلاح راقی به هم نرسوشن، راطا نوشتم به این معنا، برای زائر رو اسفیجیوشن در روح و رؤیح ورود. اما اخیراً بیشتر نظر اینه که اصلا لحاظ نکرده. اگر حالت سابقه ل... به اصطلاح مطرح نیست، به خاطر اینکه رؤی رو دیده، طبیعتا مطرح نیست. نه اینکه حالت سابقه رو دیده، لابد هرگز یقین به شک به خودش دیده، خب دقت بکنید. دیده گفته من در جای دیگه حالت سابقه لحاظ می‌کنم. اینجا لحاظ نکردند. قول دقت پس صفر احتمال خیلی روشن و واضحه الان ما عرض کردیم که کاملا هستن بحث قانونی یعنی بحث حقوقی است و بحثی که اقتصادش چند بحث تحلیل اصولی است مثل این بحثی اینجا متعلق قانونی است یک مقدارش هم تحلیل لغوی است مثل مفهوم لقب کلام مثال زدن تو آیا در وقتی که میگه این چوب با این هیئت صندلی است فقط این چوب و این هیئت دیده خواهی نخورد فقط وقتی این میز ندیده، خواهی نخواهی ندیده، طبیعتا ندیده. طبیعتا درخت ندیده، طبیعتا کندر ندیده طبیعتا وقتی این هیئت آیه این جوریه؟ یا نه دیده، نا که بعد از دیدن گفته اسم این میز، اسم این سندلیه. اسم این میز. یا نه اضافه بر اینکه دیده تو مقام جعل هم این نکته مراعات کرده. چوبی که به این هیئت باشه میز نباشه کنده نباشه در اینه ای حی... لحاظ کرده اسم این رو صندلی گذاشته خوب دقت بکن اگر این معنای سوم باشه هم مفهوم لقب مفهوم لقب باشه چون اگر تو مقام جلال هم چی کاری کرده باشه وقتی بگه صندلی بخر میز نخره درخت نخره کنده نخره چون تو مقام جلال شده بود خای نه مفهومه خواهی نخواهی معنیش اینه که مادشم همینطور گوش نخرد فرصان پنده نخرد مادش, مادش. ماده و صورت هم هر دو دخالت دارد این بحث مفهوم لغم بحث قید وحدت که در معالم آمده بحث این بحثم امیدن به لحاظ روز تابع اوناست البته ممکن است و این نکترم من این توضیح بدم، ممکن است شما بگیم درسته تعدد لحاظ اما تعدد لحاظ واقع رو عوض نمیکنه. واقعی یکیه حالا میخواد لحاظ بکنه از سابقه نکنه و لزاخ خواهی نخواهی مثل لا تنظیم گزری به شک و مثل بلاغت را این واقعیت هست این چیزی نیست که ملاحظ عوض بشه مثل بنده منوامم بنده الان روی صندلی نشستن زیر سختم دو تا لحاظ کردم لحاظ زیر سختی و رو لحاظ روی صندلی این دو تا لحاظ صد تا ایجاد نمیکنه من یادم دو نفرش نیستن ما این مطلب رو چند بار توضیح دادیم توی بحث اجتماع نه مطرح شده غالباً و اون نقطه‌ای که ادعی قائل هستن که به امتنا یک نکته مهمشون البته نکات متعدد داره یک نکته ای مهمشون اینه و اون اینه که ما محفوظ کلام ما در و اجتماع جایسی به قول این تاذی اصطلاح اخیر اصولین ما اتحاد ت... ترکیبش اتحادی باشه نه انظامی در موارد ترکیب اتحادی ما بحث اشتمال نندریم مراد از ترکیب اتحادی یعنی دو تا یک عمل وحدانی باشه یک واقعیت وحدانی باشه یکی باشه لكن دو تا عنوان بشه که هر دو عنوان برای صدر بکنن مثلا فرض شما در حال نماز مشغول رکوع هستید مشغول رسول قیام و رکوع هستیم مشغول سجده هستیم خود این عمل شما این انحناء شما این سر از رکوع برداشتن که خودش مثلا واجبه یه حالا محقق و عنوان رکوعه سر از سجده برداشتن که بنابر مشهور خودش واجبه بنرسه محقق و عنوان سجده است اینا همه تکلیفن هم. خود همین سر از سجده برداشتن از هر مقوله‌ای باشه از تو مقوله وضع باشه چیزیو این مقوله دو تا عنوان از شخصی که پس در لباس قصبی یکی نماز این دوتا عنوان دوتاش نمیکنه یکیش میکنه از درست دو, تا... دو عنوان ازش انتظ میشه عنوان فوقیت من تحت صرفن و فوق صندلی این دوتا نمیشه یکیه و زا اهم دلیل کسانی که قلا در موارد ترکیب اتحادی عال به یکی از ادله مهم میشه همینه. تعدد عنوان تعدد عنوان قصد باید بعضیم اموتا عنوان قصد تا برمین عنوان تصرف فیملی که یکی باید من بحث نمیشه تعدد دوتا عنوان یکی تصرف فیملی که و یکی عنوان سلاتی و لذا ارز کردیم. کردیم کاری که بعدهایی این از قبلا بود اصول این اخیر ما لغتش رو کرده از قبل بود اصلاه که از اشارات قبلی همین بود لذا اینا آمدن در اصول در همین بحث اصول متاخر مثل هم استاد تو بحث اجتماع النای بحث سهروروی رو هم اضافه کردن یعنی بحث این کردن یک به لحاظ کبروی که اگر ترکیب اتحادی باشه دو به لحاظ سهروروی مثلا صلاه در بیت در دار کجاش ترکیب اتحادیه خب مشهور مثلا این تو بود که همش ترکیب همه که شما رکوع می که شما زت میگی اینا همش تصرف در می که غیره این عمل شما هم صلات هم تصرف در ملک ده من های خودی معتادن نه اینا نیستن اون مثلا فرض کنید زکو شما از مقوله مثلا کیف مسموعه اون یکی از مقوله وضع اون اینا غیر از مقوله تصرف در اینا غیر از مقوله مقوله غیر از مغوله تصرف در ملک غیره لذا مثل مرحوم استاد قائل شدن اصلا دیگران هم. که در مثل نماز نماز در مکان غصبی از مثال در صوب غصبی برای اینکه اشکال اونجا کمتره. مثلا در اصول آمدن فرق گذاشتن بین نماز در لباس غصبی و نماز در مکان غصبی در مکان غصبی قبول کردن امیس که شما سر از سجده برمیدارید تصرف در لباس هست امر سلاکی هم هست این قبول کردن که یکیه اما در مثل نماز مثلا آیتوی میفر هیچ از اجزای صلاح ترکیبشون اتحادی دید سجده در سجده است که ترکیب اتحادیه میشه که هم سجده از هم صلاحه و هم تصرف در ملک غیره هم قصده اما در رکو در ذکر رکو در قیام در ذکر قیام اتحادی پیدا نمیشه اشاره من دای عرض میکنم من باحث به اجمالی عرض میکنم برای احاطه ذهنی آقایان رضا مرموم استادم و کسانی که این راه رفتن این راه رو ارسلدم از نصف اون زمان قبل از سهروردی متکلمین در به اصطلاح اصول آوردن ما در تحلیل مباحث اجتماعی بحث‌های تاریخی رو ارسلدیم کیفیت استدلال اصلا استدلال‌های در بحث اجتماعی نه به تاریخی هم اصلا عوض شده فرق کرده این استدلالی که بیشتر از قرن مثلا 5 و مخصوصا معتزله یا غیر معتزله مطرح کردن و حتی مثلا اشعاری مثلا تخرازی لذا فخرازی میگه اگر ما باشیم مختصر قاعده اش امتنائی باید بشیم عمل باطله لیکن میگه چون صحابه پشت سر خلافا نماز میخوندن و خلافا قاسد بودن زمین قصی داشتن لباس قصی داشتن حکم به خاطر حکم صحابه حکم به صحت صلات میکنه بلا ایشون میگه مختصر قاعده باید حکم به بکیان صلات در لباس قصی یا مکان قصی بکنه قاعده اقلی رفتا میکنه اون قاعده عقلیش یک مقدارش اینه که نمیشه یک امر واحد دوتا چیز بگیره یک امر مرادوندن امر یک حقیقت واحده یک حقیقت واحده دارای دوتا عنوان بشه یک عنوان معمولون به یک عنوان من یعن. یک عنوان این رو به تعبیر دیگر در کتاب های مترخب و اصولی ما این عنوان مثلا به تعبیر مهموم این سجده یک عمل است البته شاید نمیشون توضیح دامتون زهرم نیست ما اونجا مرز کردیم این بحث بحث فقهی هم داره که اصلا حقیقت سجده چیه ایده مطابق به حقیقت سجده انسان پیشانیش داره تا نزدیک زمین برسه رو روی زمین نذاره لذا که از آیون علمای بزرگانات الله علی هستن بعضی آقا مثلا نشریه کردو میخوان من در خم میشن و می بوسن میگن اینم سجده است لازم نیست پیشونه بزنید بگذاره همین مقدار انحنا سجده است بین و, این دل دل و یه بحثی توی این اولین بار توی کربلا ارسال نامه نشد و ناقل‌ها حال وارد این یک احتمال اینه که همین مقدار که شما روز خم بشینید عقفه بابو ببوسینید که سر بزنیم. خود این کافی سار سجده بوده عبارات ها و اصفاح اینا اولود برای اثبات این امر روی این رأی حرف حرفی هیچ درستی میشه هم. چون اینجا حقیقت سجده غیر از حقیقت در که در ملک احتمال دومم این بود که شما مماس بشه پیشانی شما با زمین نه انحنا بیش از انحنا همین که مماس بشه یعنی پیشانی شما نزدیک زمین قرار بگیره تماما این کافی سره سجده بوده روی این مبنام ارتهاب پیدا نمیکنه رو این مبنای کسانی که سجده وضع الجبهه اعتماد به جبهه علی الارض و یه فشاری یه حالت این سجده است به مجرد مماسه سجده نیست پیشانه قرار بده و این تصرف در نکره اینجا میشه تصرف در نکره اینجا حقیقت سجده که صلات با حقیقت تصرف روشن شد ما به میشه؟ بعضیش اصولیه بعضیش فقیه پس علما بر این استدلال عمرشون این شد که عمل حقیقتاً حیرزن مغولیه و ولالن یک حقیقت واحد است دوتا عنوان دوتاش نمیکنه. مثل من الان از یک عنوان زیر سختم از یک عنوان بالای صندوق دوتا نمیشه. ما اینجا همینه میخوام بگم ارز کردم که در محل خودش خودی این مطلب محل مناقش هست یعنی اصل نکته بحث در باب اجتماع نه همین نکته است. ما اخیدم گویی اشاره کردیم ارز آوان بخوام نگاه کن که بحث استساق قوله به تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفیه که من هون ناینی در هم در فواد روسی من هون ایشون یک فرق بین انتظار و اعتبار گذاشته هر بیشتر درسته کاملا نتین ما یک کلاران اعز کردیم تعدد انتظار تعدد نمیاره رست راسته من که اینجا نشستم به یک لحاظ نستم مستدبر یک دیوارم مستقبل یک دیواره زیر سقفم باله اینو درست این تعدد انتظاره اون چیزی که در باب صلات تسخلافاً تصور هست استاد رحم الله علیه خوی اینجا تعدد انتظار نیست اشتباه نشه نگیم یک عمل واحد دو تا انتظار کردیم یکی صلاتیه دیگه قصدیت خب دقت بکنه مشکل کجا شد البته انتظار و اعتبار هر دو مثلا فرضون واقع به اصطلاح از بلحاظ خارج هر دو ادعا نفس با هم نقاط مشترک دارند. اما انتظار غیر از اعتباره در انتظار شما کاری نمیکنید دو چیز رو با هم قیاس میگیید این شون تحت سخته باز همین رو با چیز دیگه اگاه میکنید این فوق صند. شما کاری نمیکنید. اما در اعتبار شما جعل میکنید خوب دقت بکنید. اینا خیال کردن مثلا تحصیل شما مکلق رو در نظر میگیریم با عنوان سلاتی که مثلا قیام و قعوده نه شما این دوتار رو با هم نگاه نمی کنین اضافه بر این که این دوتار رو میبینی این امر رو یعنی این حالات قیامی و قعودی رو تو ذمه ای او قرار میدین در انتظار شما چیزی جعل نمی این خیلی نکته فندیزا شما انتظا غیر از اعتباری این چند بارم تکرار کردیم بله بحث واقعی اجتماعی نه در اینجاست آیا در امور اعتباری تعدد اعتبار است برای تعددش یا کافی نیست؟ اما در امور انتظایی قطعا تعدد انتظا موجب تعدد نمیشه انتظا موجب تعدد نمیشه و اینی که آقای خوبی فرحانه یونتز اومن خلاطیت و غصیت این درست نیست. انتظا نیست. در ما نحنفی هم انتظا نیست. یعنی که شاید یک حالت مثلا انتظا میشه ازش استصحاب یا انتظا از... نه این انتظا نیست. دو تا جعل، دو تا اعتبار. بله اون بحث لطیف در باب اجتماع این است که ما اولا اونجا رو تعدد اعتبار بدانیم، نه تعدد انتظا، این یک دو اون بحث اساسی قانونی اینه میگن تعدد اعتبار کافی از تعداد تعدد یعنی اگر با عنوان سلاطی معمورون به شد با عنوان قسمی منید همین دو تا اعتبار دو تا شیم کنه عمل واقعا یکیه اشتباه نشه عمل وحدانیه تعدد انتزاع عمل گهدانی رو دوتا تا کنه بله این قبول اینجا بحث نداره اما تعدد اعتبار عمل گهدانی رو دوتا می کنه تعدد اعتبار تعدد میاره نه تعدد انتظا تعدد انتظار نمیاره پس لذا نکته فنی تو بحث اجتماعی این است که آیا تعدد اعتبار است برای تعدد ما معنوان عمل واقعا گهدا اون سجده بقلاه خوی در سجده در لباس مقصود کلن اما در خصوص مکان مقصود در سجده بخش بقلاه اون سغره ما اونجا عرصه این سغره کبره می ندارد. این آن بحث اینجوری کردن توضیح ها داشت دارم هم داشت اون نکته فنی اساسی تو بحث اجتماعه روشن شد نکته فنی چیه؟ اولا انتظار نیست ا عمل وحدانیه این مسلمه اون حقیقت خارجیه عمل واحده این مسلمه دو تا اعتبار بهش شلو گرفته نه دو تا انتظار شده این تعدد اعتبار موجب تعدد عنوان معمد میشه یعنی اون عمل وحدانی دو تا میشه با اعتبار تو وعای اعتبار دو تا میشه به لحاظ سلاتیت بشه معمولنده به لحاظ قسمیت بشه منیوان یا نه تعدد اعتبار دوتا نمی کنه مثل تعدد انتظاه چطور تعدد انتظاه تعدد نمیاره تعدد اعتبار هم تعدد نمیاره آره ولی زمان در محل خودش اثبات کردیم که صحیح این است که تعدد اعتبار تعدد بیاره فرق اساسی بین انتظاه و اعتبار در همینه و در اعتباریات تعدد عنوان کافی است برای تعدد و معنوان و ما یکی است حقیقتاً و واقعا' هم یکیه این دو تا عنوان که روش ویات مشکل نداره تعدد viها 400، معنو... تعدد میکنه این در خصاص اعتباریاته در اعتباریات به خلاف انتظائیات تعدد عنوان تعدد و معنوان میاره اما در انتظائیات تعدد عنوان تعدد و معنوان نمیاره معنون یکیه ولذا نکته اساسی تو بحث اجتماع هم. نه اینه این مطلعون هم در ما نحنفی اشتباه نشه اگر ما اعتبار کردیم حالت صابره رو اعتبار کردیم بلا را اعتبار کردیم امز فی صلات بگیم امز فی صلات با بلاقدرت یکیه نه این مبنیست بر اینکه اینا انتزاع باشه انتزاع نیستن اعتبار هم. اگر تعدد اعتبار آمد تعدد معذن هم میاره دو دهاس میشه یه لحظه امسفی صلاته که یه لحظه بلاغدر کرد این دو تا لحظه هم گفتن نتیجش اینه که صحت صلاته دقیق کردی چون انتظاری نیست چون بعضی از والا سوال کردن که نتیجه بده این نکشه همین نکته فلسفی در بحث اجتماع نه گذشت چون اینجا اعتباره اعتبار اگر آمد مگر این که مثلا بگیم اینجا مثلا کنایه است زدون ما و الا اگر ما این را هم اعتباری بگیریم تعدده اعتبار منشه تعدده ما میشه پس این خلاصه بحث که ما دیروز با مرموم آزی های اینجا کردیم عرض کردیم سه احتمال اساسی بین لا یقینه به شرق با بلا قدرکت داریم این تحلیلش یک وقتی که میگه بلا قدر کرد فقط خود این عمل در نظر گرفته قیام شما رو در نظر نگرفته ولی اون طبیعتا قیام هست لیکن وقتی روک در نظر گرفت خود به خود لحاظ قیام نشده خود خود به خود نشده این یک دو لحاظ قیام رو کرده فهمیده قیام هست خودش هم در جای دیگه گفته به قیام برگردیم به حالت سال خودش گفته لکن اینجا لحاظ نکرده دیده حالت سابقه رو لکن در مقام لحاظ لحاظ نکرده در دوره سال روش میشید روح به اصطلاح خودمون سه هم لحاظ کرده هم به در این پیدا کرده چرا؟ چون ناظر و لاحظ یک نفره خود شارعه خود شارعه گملا تنخوزه یقینه به شم دقیق کردیم پس وقتی خودش گفت لا تنفذر به بشن وقتی آمد بلا قدرکت یعنی میگه من که گفتم بلا قدرکت اون لا تنفذر یقینه به که من دکی جاری نکن این حرف آزی پس سه تا احتمال در مثل اینجا هست میگرم برشن شد شبیه بحث و برد اون بحثی که در معالم آمده معالم میگه لفظ و شده برای معنا به قید رهدت این شبیه حرف در اینجا میشه دوم مرحوم اصحاب قا... قوانین میگه نه و از برای معنا در حال وحده این شبیه همون روح برودیست که ما گفتیم سوم هر دیست که بعد اصحاب قوانین که مشهور شده تو, تو کفایی از تو کتابهایی نه حال وحدت لحاظ شده نه قید وحده ها. برای ذات معنا نه وحدت ذاتم قیدن ملاحظه شده نه حالم هیچ کدام لحاظ نشده این سوال اینجا بی تصور بکنه محصه قانونی را حقوقیش را سوال بکنید سوال اینه وقتی که گفت مثلا را کرد اصلا این حالت نگاه کرد با خودش خودشم گفته بود اصلا با اون نگاه نکرد این نگاه نکردن طبیعی است یعنی به طور خودخواه به طور بصلاح اوتوماتیک خودکار آمده دو این الان هرکیست من الان اعتقادم بینه دو اینی که اون حالت رو دیده خودش هم گفته لاتنگازه مال خودش جائلیه کیه لحاظ کرده اما تو مقام تعبیر نیاده فقط تو لحاظ آورده این رو ما صحابه نسید روشیم روح برویم سه اینی که لحاظ کرده و تو تعبیرم آورده تو تعبیر بلا قدرکت نازه از تو تعبیر لاتنگازه یقین به شک این حرف آزی هست. حرف مرمومه های عراقی و حرف مرمومه های خویی این حالا شما خودتون تحریر زهر وید که الله محمد و